تا دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز، بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازید با علش دل ببندید اجما که دل سبز، سبزه پیچی توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی حالا احبالتون چطوره؟ من فرشید منافی اینجا رادیو پس فردای شماره 958 امروز شنبه 12 دی ماه 1394 یک هفته دیگه با شما ایم خوب خوبین خوشین سلامتیین چه خبرآ به به به به سال 2015 تموم شد و رفتیم تو 2019 سال نو میلادیتون مبارک باشه البته دیگه 100 سال به هزین سال ها و این چیزا دیگه مخصوص نوی خودمونه و سال نوی میلادی همین یه هپی نیو داره دیگه تمومه دیگه کلا زیاد میدونین سال نو رو پیچیده نمیکنن این خارجی ها یعنی حتی ماچو هم این مودمات شو بوس و این چیزا هم که ماها مثلا توی ایران موقع سال تحویلم چی چالاپ چولوپم چی میچسونیم به هم دیگه به لوپای هم دیگه اونا رسم و رسوم اینجوری ندارن نمیکنن ولی بله خب دیگه ما که نمیشه سال جدید بیاد ماچو موچی نکنیم هم دیگرها کلن در ماچ حاجت هیچ استخاره نیست پس ما هم از همین راه دور ماچهای خودمون رو راهی لپه های گل شما میکنیم اینطوری و امیدواریم که سال 2016 سال بهتری برای همه مردم دنیا باشه مقداری ولوم جنگ و کشت و تو دنیا کمتر بشه خب سامیکو رفت نیست؟ خوبی شهرم؟ سلام خوبه خوش میگذاره؟ سامی هم کار داشت یکی هم کاره عقب افتاده بود داره انجام میده افتاده بود بله سامی همین امروز رفته بود پاریس خوش خوشان همین امروز رسیده خلاصه اینکه همگی خوبن و به مناسبت اولین برنامه رادیو پسپرده تو سال جدید میلادی میخوام شهرام یه کاری کنی یه کاری کنی یه چیزی بزر دیگه, دیگه تا آخر سال که نه چون ما تا آخر سال که نیستیم تا آخر سال میلادی یعنی نیستیم ولی تو همین چند ماهیی که تا ته برنامه مونده با همین فرمون بریم جلو یعنی یه چیزی که هم غیری باشه هم رسمی و مجلسی باشه هم همه سلیقه ها رو بتونه راضی کنه دیگه نمیشه شهران میگه نمیشه ساخته نشده چون چیزی تو امروز اشکال نداره آقا همون غیری همیشگی رو بره دیگه دیگه وقتی قرار باشه تو اولین برنامه سال بین سنگین بودن و غیر دادن یکی رو انتخاب کنیم ناچار به انتخاب دومی هستیم شرام برو بریم برو بریم ببینم چه میکنی ها آها. همینه همینه بیا یادش به خیر قدیم چی شاد نه. از این سال نوی میلادی رو خدمت شما و همکاران محترمتون تبریک میگم فرشی جان میخواستم بگم که بهتره که یادمون باشه که بیشتر قدر اقلیت‌ها و هموطنان اقلیتمون رو بدونیم و بهشون از همینجا میگم که همشون رو بسیار دوست داریم اقلیت‌های مذهبی ایران مردمانی بسیار نجیب و بسیار دوست داشتنی هستند. فاشی جان سین الف هستم از تهران. خیلی ممنون سین الف همینطوری که فرمودین کلا دو دسته توی ایران هستن که بعد از انقلاب کمترین آزار و آزیات رو برای دیگران ایجاد کردن، این که همین اقلیت‌های مذهبی هستن که گفتی یکی هم خب های بی‌مذهب هستن که سرشون تو کار خودشونه در دورنجی بر بقیه تولید نمی کنن. اما تو بگم آ این وسط دوستان مؤمن و مذهبی زیادی هم داریم که الا حق دین و مذهبشون چماق نکردن رو سری دیگران که ما مخلص اونا هم هستیم دروست. بریم سراغ برنامه این هفته و موضوع این هفته شاعرمون شعر سروده گفته که خداوند قبار و دود داریم هوایی سرد و گردالود داریم بیا ششهای ما را آهنین کن وگرنه ارتحالی زود داریم محیط زیست و آشغال فراوون دل رودخانه ها از دست ما خون همه دریاچه ها و جنگلا پر در و دشت و دمن داغون داغون کرم کردن با اسوات مزاهم با داد و اربده بوغ مداوم دلم میخواد برم سهرانشین شم نبینم این تصاویر مهاجم به به تشکر میکنیم از شاعر پاکیزمون این هفته با توجه به اینکه نه تنها در مملکت ما که در خیلی از نقاط دیگه, دیگه دنیا هم همه چی آلوده است ما هم آقا دل زدیم به آلودگی و رفتیم به جنگ آلودگی ها ایشالا که تا آخر همین هفته به خاطر ما هم که شده مشکل آلودگی هوایی و زمینی و آبی و صوتی و تصویری و کلن همه چی حل شه بره پیکارش ما بمونیم و یه عالم پاکیزگی و ناآلودگی شما هم بتره به جای پوز زدن به خوشخیالی های ما این پسورداگیر خودتونو هر چی که هست برای پنج برنامه این هفته آماده کنید باشد که هممون دوره هم رستگار و پاکیزه شویم اما خانمه آقای اون دختر خانمه به سراب اگه باشه مدتها پیش برای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن جمهوری اسلامی عروسک های دارا و سارا رو ساخت که جایگزین عروسک باربی بکنه اما خب از اونجا که عروسک دارا و سارا شبیه بچگی های انصار هزبالله و فاتی کمانده های گشترشاد بودن خب بچه خب باشون خیلی ارتباط برقرار نمی کردن. خب بچه ها ترجیمی دادن همچنان با اون عروسک های خوشگل مشکل باربی خودشون بازی کنن دیگه اینه که دو روز پیش توی یکی از مدارس دخترانه ابتدایی مدیر مدرسه یه دفعه به فکر افتاد به فکر افتاد چیکار کنه؟ یک مراسم عروسک سوزان را بندازه و از بچه های مدرسه بخاد عروسک باربی های خودشونو توی خونه عروسک باربی دارن بیارن بندازن تو آتی نه به جان شما دروغ هم کجا بوده این هاش؟ شرام بز این های خانم مدیر سوپر ارزشی رو چون باربی در واقع یک مبله هست برای فرهنگ قرض تا یک مراسمی اونها رو منهدم میکنن بله یعنی همه جای دنیا ها مراقبت میکنن بچه ها تو این سن سند سال با صحنه های خشونت آمیز و اینجور چیزا مواجه نشن و اینجا به بچه های هفت ساله میگن عروسک هاشون رو مدرسه بزنن تو آتیش بسوسونن انگا برگشته باشیم خرون وسطا. نه فکر کن؟ آقا به این میگن مقابله خیلی ببخشید خیلی ببخشید خرکی با فرهنگ غرب خب دیگه یعنی این چ... یعنی چی آخه یعنی این بچه مثلا وقتی میبینه عروسکیش تو آتش داره زغال میشه دود میکنه قرار به چه نتیجه ای برسه نه به من بگی قرار به چه نتیجه برسه دیگه بفهمه که فرهنگ غرب چقدر بده بفهمه آتش زدن و سوزوندن کار خوبیه آقا این کار کار همون کار مشابه کار داعش نیست هفتی رو چاقو میده دست بچه 10 که مخالفین دشمنانش رو اعدام کنه سر بره. من نمیدونم اما خلاص آقا دیروز که این صحبت های خانم مدیر به دست ما رسیده و تصافیروش دیدیم ما همجور انگوش به دهن موندیم که آخر آقابت این بچه ها که زیر نظره چونین اندیشمندانی دارن درس میخونن قرار چی بشه شما اگه فهمیدین به ما هم بکیم oh, yes. خواهش سلام, سلام علیکم سلام شما انتظار ندیش چی شده بود خیلی ناراحت شدم ای بابا دیو فراموش کردی روز بصیرت رو فراموش میکنی شما باز در چه حرفی من میشه ما حماسه نهم دی رو فراموش کنیم اصلا همچین امکان داره فتنگرا فقط شانس آوردن این بار نهم دی افتاد به چهارشنبه ما برنامه زنده نداشتیم وگرنه ویژه برنامه می‌رفتیم یک تجدید بیعت با معظم له می‌کردیم یک موشک محکمی هم. میزدیم تو در دیوار این بر, بر. نشد ولی بشه نشد اما آم در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران جانشین فرمانده سپاه در بین دو خطبه رفتن پشت تریبون و خیال همه رو از بابت کمبود موشک توی کشور با این جملات راحت کرد امورهای موشکی ما تونل‌های طویل صدها تونل طویل مملو است از موشکهایی که همه آماده پروازند برای دفاع از عزت شما، استقلال شما، آزادی و حریت شما، بابا. اقتدار شما بابا. و سایر مسلمانان عالم بله. ما برای جای دادن موشک ها در انبارهایمان امروز با کمبود فضا مواجهیم خب خدا رو شایی فعلا مشکل کم بوده موشک که میدونم خب دقدقی خیلی از مردم بوده خدا شاهده خودشون گفتن این دقدقی حل شد یعنی اصلا این دیگه حله خیالمون مراحته را هم آقایون حالا حالاها موشک داریم بزنیم تو سرکله کله اینو اون خیالتون راحت اما یه مشکل دیگه ای که پیش اومده اینه که الان گفتن بچه های سپا دیگه این تونل‌های زیرزمینی‌شون پر شده دیگه جا ندارن این چه میدونم زلزله و نمیدونم سومار و شهاب و نمیدونم فاتر و فکور و قاصد و اما این چیزها رو اینا رو ای اسمش موشکات دیگه اینا رو که تولید می‌کنن انبار کردن جا ندارن آخه این که دیگه باید امیدوار بود زودتر یه جنگی چیزی پیش بیادیم موشک ها هم خب مصرف بشن برن آتل باطل تو این تونلای زیرزمینی خاک نخر خوب بالاخره آقا برای ساختشون زحمت کشیده شده جا ندارن الان اینا اه. تا قبل از اونم حالا در حد یه پیشنهاد ما داریم میگیم حالا که به حال تونل گفتی کم آوردی برای انبار کردن هاتون یه مدت میتونین از این تونل کندوان و سایر های جاده چالوس اینا به عنوان موشک استفاده کنی مردم هم از جاده رشد و جاده هراز و سایر مسیر برن شما رو بیان ها؟ والا دیگه حالا شما قیافاتون اینجوری نکنین دیگه فوقش برای چالوس رفتن چند بیشتر تو رایین دیگه چی میشه مگه؟ شمال رفتن شما مهمتره یه افزایش اقتدار موشکه نظام بگید؟ بگید؟ آها آفرین هی وای اکسیژن سلام فرشید جون بعد از دو هفته اکسیژن برگشته تهران باهمت. باور میکنی امروزی دیه هوای تمیز و بارونی داشتیم رفتم شاخصهای آلودگی دیرم اومده رو رسیده آخه. عجب هوایی شده جاد خالی داریم با بچه ها دوره هم نشستیم هی اکسیژن تنفا حامد اصلا محمد. قربونت از تهران حامد جان خیلی ممنون دوستان بجای ما ولی کم مصرف کن تو رو خدا اکسیژن به همه برسه اینجوری که شما نفس عمیق کشیدیک به کسی نمیرسه که دوره دور همی تントン نفس عمیق میکشید دوباره دو روز دیگه هوا همهش میشه دی اکسید کربن سعی کن شما نفسو بدی تو یه 3 ثانیه نگهداری بعد بدی بیرون صرفه جویی کنید این رو دیگه من مفتی که به دست نمیاد ایفو نکنین حالا من بگم شما گوش نده باش. بله خب خدا روشو که انگار دیگه خدا دلش به حال تهرانی عزیز بالاخره سوخت و همطوری که این دوستمونم گفتن حال دیگه دعا و نیایش مردم جواب داد امروز هوای تهران بعد از مدتا قابل تنفس اعلام شد کلن این چند روزه یه موج از برف و بارون خب خیلی از مناطق ایران رو فرا گرفته بود جالب اینه که پیران شهر عزیز رو که ما هفته گذشته کلی تعیف ها اباش کرده بودیم دیروز تو بعضی مناطق و جادهی کوهستانی خودش بیشتر از دو متر برف داشته. خیلی ها دومتر یعنی عملا رفته آمد به این شهر غیر ممکن شده بوده. الب ما چشمون شور نیست نگن چش مشهور این حجم حجمز برفم قطعا باعث خوشحالی و غیربرکت رو بر مردم پیران شهر و البته اطرافش ولی امیدواریم روی حساب تعریف ما که هفته پیش گفتیم کسی برای فرار از آلودگی آخر هفته. رو حرفای ما اون سمتا نرفته باشه چون با این برفی که اومده دیگه اعتمالا یه هفته بعد اونجا بمونین دیگه تا راها باز شد و بتونین برگردین دیگه خلاصه که این روزها سرمایه زمستونی و برف و بوران و یخبندون که البته بیشتر توی نیمه شمالی کشوره درسته که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و تا حدی عقب رونده ولی خود این موج سرما و یخبندون و برف و بوران اگه مراقب نباشیم میتونه باعث دردسری خیلی جدی تری بشه منتها نکته مثبت قضیه اینه که میشه با سرمایه کنار اومد و مراقب بود که مثلا یه وقت ساعت صدمه ای نبینیم سرما نخوریم ولی با اون آلودگی هوا آقا هیچ رقمه نمیشد کنار اومد که خدا رو شکر فعلا ظاهرا شرش رو کم کرده و رفته ما بریم امروز سراغ آلودگی هوا تلاش برای زنده ماندن میان این همه منوکسید کربون و سرب و ریزگرد بیانی 958 بیانی شماره 958 بدانید و آگاه باشید که متهم ردیف اول آلودگی هوا در بسیاری از مواقع خود ما هستیم پس اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که پیاده روی و دوچرخ سواری و رفت آمد با وسایل نقلیه عمومی را دور از شعن خود دانسته و زندگی و کار و تفریح و همه چیزتان یک سرش به لاستیک خودرویتان گره خورده است پس همانا مقصر اصلی چنین وضعیتی هستید ولی چه فایده که باز همه ما انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه گرفتندگانیم امزاو جمعی از توی این همه دود و به زور نفس کشیده ها و زمین و زمان و برای این وضعیت مقصر دونسته ها و با این حال تا سر کوچه بدون ماشین نرفته های رادیو پس فرده ده ده ده ده ده ده, ده, ده, ده, ده. آلودگی استدیو بالاست. ببخشید <تصح> کلن دوستان عزیز هوا از نظر سطح آلودگی به چند مرحله تقسیم میشه در مرحله اول ما هوای پاک رو داریم که البته خب گونه بسیار نادری از هواست که در معرض انقراز قرار داره و به جز نواهی دروفتادهی توی کوهستانهای مرتفع در جای دیگری خب نمیشه این هوا رو پیدا و استنشاخ کرد هوای پاک رو منظورمه نگران نباشین. نگران نباشی. در مرحله بعد از هوای پاک ما هوای سالم رو داریم که فرقش با هوای پاک اینه که پاک نیست ولی خب سالمه میدونم می خب یه ذر عجیبه چجوری میشه یه هوایی که پاک مثلا یه هوایی پاک نباشه ولی سالم باشه ببینیم مثلا مثال میزنم شده تا حالا توی مثلا رستوران نشسته باشین یه که مشتی هم سفارش داده باشین بعد یه تیکه از این موقع خوردن افتاده باشه رو زمین وای, وای اتفاق دردناکیه میدونم خیلی ها خب تو رو دربایسی هم که شده بر نمیدارن شیشلیک رو بخورن در صورتی که های برش دارن یه فوتی هم بهش بکنن بخورنش خب هیچ داریشون نمیشه دیگه این شیشلیک استلاحا پاک نیست ولی خب سالمه میشه خوردش هوای پاک و سالم هم حکایتش همینه یعنی چی؟ یعنی هوای سالم اون شیشلی که افتاده زیر پا با این تفاوت که دیگه اینجا کسی نمیاد پیف پیف کنه بگه این هوا پاک نیست من نفس نمیکشم نمیخوام نمیخورم نه نمی این صحبت ها یعنی اصلا هوای غیرتی ها رو برنامه می‌داره اصلا شدنی نیست اینه که همه نفس میکشن و برای دلگر می دادن به همدیگه این شده میگن به به چه هوای سالمی به هر حال که تا الان کسی از خوردن شیشلی که رو زمین افتاده کسی هم با این هوای سالم به جای هوای پاک راهی اون دنیا نشده جای نگرانی نیست این شیشلیکو تو ذهنتون داشته باشین کار داریم امروز باشا بعد خوش به خوش به چه جالب چه جالب, چه جالب. چه من الان داشتم قسمت توضیحاتو می که این برنامه رو یکی از طرفدارای رادیو پس فردا درست کرده یعنی بله. یکی از همین ماه آدمایی که رادیو پس فردا را رو گوش میدین فرها واقعا خیلی فرهاد. ممنون چون من از این برنامه استفاده میکنم میخواستم که تشکر کنم از سازنده این اپ خیلی کاربردی رادیو پس فردا ببین فرها دی کاری کردی که با یاد سالهات جدا میدونی چقدر دعای خیر بدرقه راه خودت کردی با این اپی ساختی خیلی ممنونم خانم از تماس شما ان شاء الله برای اندروید هم همین روزا به حال فرهاد آستین می‌زنه بالا دیگه تا تموم نشده این رادیو پاسورده یه اپی چیزی می‌سازه دیگه اون دنیا تزمینی مستقیم صاف زیر بغلشو بگیرن اینجوری بندازنش تو بهشت حالا ببینم حالا ببینم چی گفت ایون دقت بفرمایید این هفته از شما سوال میخوایم بکنیم که بهمون بگین کلاً میونتون بالودی با هوا چطور اصلا میونتون با آلودگی چطوره نه فقط هوا یعنی می‌خوایم صادقانه ببین صادق باشید با ما این هفته بیرو دروایسی به چند تا از اون آلودگی‌های گلدرشتی که تو زندگی ایجاد کردین و میکنین میخوایم اعتراف کنین بلکه این بار گناهانتون سبک بشه فقط خودتون میگیم. پس چی شد این هفته اگر با ما در تماس بودین صادقانه بیرو دروایسی اون آلودگی از جای آلودگی ساختین هر جایی میتونه باشه فرق نمیکنه آلودگی صوتی آلودگی تصویری بسری آلودگی آب آلودگی هوا هر چی اعتراف کنین دیگه اعتراف کنین خودتون سبک کنین حالا میخواد گفتم چه میدونم آلوده کردن هوا به خاطر استفاده از خودرو برای دور بازی و رفت و آمدای غیر تون باشه یا ایجاد آلودگی صوتی مثلا تو شبای چهارشنبه سوری یا بوغ زدن های علکی تو صد شهر؟ برای چی بوغ میزنی بی خود؟ یا ریختن زباله ها توی جوب آب در خونه همسایه توی طبیعت؟ یا مثلا چه میدونم پهن کردن لباس های زیر و رو تو بالکن و اینا آقا چه کاری آخه یه جور آلودگی بصریه دیگه آقا همه نباید ببینن که مثلا لباس زیرت اونجا آویزون کردی که برای رهگذرایی که میرن برای آلودگی بصری ایجاد میکنه خلاصه این هفته میخوایم به نقش خودتون در این همه آلودگی که وجود داره اعتراف کنین هممون با هم آمرزیده بشیم بلکه این وسط عبرتی هم, دوره هم بگیریم دیگه اشتباهاتمونو تکرار نکنیم امیدواریم منتظر تماس های شما هست. نباشید خبری از رادیو پس فردا شنیدم که یه کره زمینی جایی پیدا شده تو کهکشان ها این زمین دوم بهش میگن شب بعدش خوابیدن خواب دیدم خوب. فرشید منافی همه بچه ها یه سفینه ساختن دران میرن به طرف این زمین دوم ولی به نزدیکی های این کره که رسیدن دیدن اه اونجا هم که مسک حکومتش بلایت فقیه <تصفيق> آقا چه بوده. هلک کلک بوده آقا بشی. بری یه کهکشان دیگه توی زمین شماره دو بخوای بری زندگی کنی بعد ببینی ولایت فقی اونجا هم شو بزده اگه شما،, شما هم با ما توی اون سفینه بودی اتا همونجا با این نعره از خواب پریدی دیگه برحال این خواب چی آقا این یه خواب خوب ببین تا رو خدا واسه ما میره خواب میبینه هادی توی اینستاگرام گفته خدارشو آلودگی تبریز رفت شد حالا تا دیروز دود چشما رو میسزون الان سرما داره کلم اونو میسووزونه. بعددی میگن از این سوتون به اون ستون فرجه همینو دیگه انگار همیشه باید مردم با یه چیزی به حال دست بجه هم کنم بقول شما یه جاییشون بالاخره بسوزه. آرزو توی اینستاگرام گفته من از آلودگی صوتی بیزارم آلودگی آلودگی صوتی صدای خر موقع خواب. اینم بر یه جور آلدگی امیدوارم مشکل گرفتاری شما هم حل بشه من فکرم بعد خانوادهتون رو شما عوض کنین یا کسایی که اطرافتون میخوابن اونا مشکل دارن دیگه به ارهاد البته خودتون هم آلدگی صوتی رو ایجاد نکنین کیوان رمضان توی فیسبوک گفته آلودگی اصلاً چیز بدی نیست خیلی هم ها... خیلی هم خوبه هوا آلوده میشه دور هم تعطیل میشیم میشینیم تو خونه اصولا آلودگی باعث استحکام خانواده ها میشه والله دیگه این هم یه جور دیدن نیمه پر یک لیوان کاملا خالیه دیگه کیوان جان تونستون ببینن اه... و کورش دورانی هم گفته اعلام کردن متاسفانه سه پسر دانش آموز محلول هم به علت آلودگی هوا در تهران فوت کردن ای داد بیداد ای داد بیداد خیلی باعث تصف و نراحتیه امیدواریم که هرچی زودتر قبل از اینکه حالا دیگه هوا ارمانی بیشتری بگیره فکری به حال این مسئله هم بشه و اما برای اینکه صادقانه و بیرو در بایسی این هفته با ما تماس بگیرین و به چند تا از اون آلودگی های گلدرشتی که تو زندگی ایجاد کردین و میکنین اعتراف کنین بلکه بار گناهانتون سبکتر بشه میتونید با ایمیل ما پسورداترادیوفردا.com بهش ایمیل بزنید یا بهمون سیمیس بزنید دو صف چهارصد بیست شهسصدسه و یک پنجا و دو صف چهارصد بیست هفتصدسیو و پنجا و شماره های ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید بر کامنت بذارید در کانال تلگرامی ما میتونید به ما جوین بشید و همینطور اپلیکیشن رادیو میتونید دانلود بکنید روی موبایل های تون همونی که فرهاد ساخته کلی براقر بره بهشت به خاطر این اپلیکیشنی که ساخته و از اونجا صدای خودتون رو به ما برسونین و یا صدای ما رو بشنوین دانلود کنید و یا صدای رادیو فردا رو به صورت زنده از طریق اپلیکیشن بشنوید تلفونهای ما هم دوسف 420 22 11 24 13 و 163 اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف 420 226 21 79 39 The light was bright اما تو قسمت قبلی رسیده بودیم به هوای سالم در ادامه و در مرحله بعد وارد مرحله هوای ناسالم میشیم هوای ناسالم اما اون شیشلیکه رو یادتون رو گفتم یادتون باشه بهش افتاده بود زیر پا گفتیم میفته زیر پا برمیدارم فوت میکنن و اینا هوای سالم بود دیگه هوای ناسالم اون شیشلیکه که افتاده بود زیر پا ولی این دفعه یکم با کپش ماده پاشو گذاشته روش از روش خب حبوای ناسالم خودش چند تا مرحله داره یعنی مرحله اولش ناسالم برای گروه‌های حساسه که در واقع اینجوری میشه که که افتاده رو زمین و کسی پاروش نذاشته اون رو اون شیشلیکه اما با نک کفش مثلا زدن شیشلیکه 2 متر مثلا رو زمین جا, به جا شده رفته زیر میز بغلی این برای اونایی که خیلی حساس هستن ناسالم محسوب میشه ولی خب من و شما که زیاد حساس نیستیم میتونیم بریم شیشلیکه رو دور برداریم یه فوتی بکنیم بهش بخوریم مرحله بعدی ناسالم برای همه گروه هاست که اگه باز مثال رو بزنیم مثل این میمونه که مثلا شیشلیکیه که رو زمین افتاده یک دو نفر هم جی با کفش قشنگ پاشونو گذاشته باشن روش این میشه هوای ناسالم برای همه گروه ها که البته یه چیز خیلی عادی و روزمره است توی شهرهای بزرگ و شما هر روز در حال استنشاق همین هوای هستین خمن به ابرو نمیارین حالا تا اینجا داستان باز داشته باشین شیشلیکرم داشته باشین تمام بیا بقیه های آلودگی هوا رو با همین مثال شیشدگی براتون توضیح بدم تا آخر برنامه که قشنگ جا بیفته براتون نگرانی ما از خطاهای آدمیست که میخواد به چشم خود پیروزی باشه ولی هنوز من حقم رو از سین هنوز هنوز نگرفتن قدر متاسفم هر بازیگری یک ای داره وقتی اون دهه تموم شد یعنی عمرش تموم شد بله صدای ولی الله مؤمنی پیش بازیگری و دوبلاج رو شنیدیم که متاسفانه چند روز پیش از بین ما رفت کامران جان سلام جان سلام به همه درست چند ساعت از اتمام برنامه شنبه مون نگذشته بود که متاسفانه خبر درگزشت ولیلا مومنی منتشر شد به خاطر ایست قلبی بر بچهای دوبلو سینما میدونن که مومنی ورزشکار بود، جودوکار بود، سیگار نمی کشید متاسفانه آلودگی هوای تهران باعث عارضه قلبی و درگوشته مومنی شد تا اونجا که با چند نفر توی تهران صحبت کردم به ها گفته شده بود که صحبتی در رابطه با علت فوت نکرده روح شاد همگی متاسف شدیم تصییت میگیم به خانواده ایشون هم طور خانواده دوبله و تئاتر و سینما متاسفیم که خبر بعد دیگه ای هم باید بدیم و اون اینکه امروز محمد علی اینانلو هم از دست دادیم بله متاسفانه این خبره بعدم امدوز بود اینالو از پیش های رادیو تلویزیون بود ضمن کار اجرای برنامه گزارشگر ورزشی هم بود که میدونم فریبورت حتما بهش اشاره میکنه اینالو تو کارنامه کاری ساخت ساعت ها فیلم در رابطه با طبیعت و محیط و زیست داشته البته سابقه بازی توی سینما هم داشت فرسی جان که به دو فیلم رنگ اغوان و ارتفاع پست که هر دو ساخته ابراهیم هاشمی کیاس میتونم اشاره کنم اگه موافق باشید بخش از اینالو رو تو فیلم ارتفاع پست بشنوید بشنب. سلام آقا نظر نمیاد بندر داری باش دخترمو تا بندر حسابی و افق کشیم تا مجبور بشه فارسی حرف بزنه الان در ارتفاع 15000 پای داریم به طرف بوشه میریم در سمت راستتون آبهای نیلگون خلیج فارس رو میبینید و در سمت چپتون کوه ها و دشت های ساحلی رو این که تقریبا ادامه ای رشتگوهای سرسبز زاگروس هستن روح اینانلو هم شاد متاسفم که امروز تو این بخش هنری و سینمایی دو تا خبر بد رو دادیم بریم سراغ موسیقی از موسیقی چه خبر کامران. بالیو خانم متاسفم که الان مجبورم یه وقتی بعد بده اما امروز اعلام شد که حجت اشرف زاده که آلبوم اخیرش ماه و ماهی جزه پرفروش ماه گذشته بوده مجوز کنسرتش داده شده دوم بهمن توی برج میلاد اجرای برنامه داره بسیار خب ممنونم از کامران عزیز ضمن خدافیزی با تو بخشی از ترانه تیتراج سریال یادداشت های یک زن خانه‌دار رو که از تلویزیون در حال پخش با صدای حجت اشرف به اتفاق میشنفیم تا فرده خود رو گفت دیدم یه شفت و برکه خواه دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون برون گرفت شهر رو و هم زدیم با اون دَر رنگین کمون با هم قدم زدیم با سلام 23 و 3 شب را ضمن استقبال از ورود موج تابذی باورندگی و سرما به کشور و افزایش امیدها برای رفع آلودگی هوا توسط ابرواد و ماه و, و خورشید و فلک با مرور بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز مینماییم بروز اختلالاتی در اپلیکیشن تلگرام در ساعت آغازین امروز و نگرانی فعالان عرصه فضای مجازی از اینکه 22 میلیون رئیس کانال و ساب گروه ایرانی شاغل در این اپلیکیشن یه وقت بیکار بشن مطرح کردن سیستم حکومتی هیتلر از سوی اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عنوان یک نظام ریاستی معصر و تقدیر نابزران از وی که به خاطر اینکه نمیتونه چیزی تو دلش نگه داره همیجی هرچی هست میریزه بیرون و انتقابده نماویندگام نکنگری آمریکا از به تعویق افتادن تحریم ها هاوی جدید این کشور علیه ایران و سوال کارشناسان که با ما آخرش نفهمیدیم الان قرار تحریم قدیمی ها رو بردارین یا دوباره بهشون اضافه کنید لطفا راهنمایی نمایی به فرمایی مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند ادامه خبرها در بخش مشروع اخبار با همکار خوشالهاونم بل بل موسیقی سلام 92 گزارش های دریافتی 47 زندانی سیاسی در عربستان ادام شدند. علاوه بر همین گزارش ها، شیخ نمر، روحانی منتقد شیعی نیز در بین همین افراد ادام شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت پیش بینی می شود در آینده نزدیک مجازاتی که کشورهای غربی به دلیل نقض گسترده حقوق شهر در عربستان سعودی برای شهروندان سعودی در نظر خواهند گرفت این خواهد بود که آنان در هنگام سفر به کشورهای غربی در فرودگاه مقصد به جای تاکسی با اتوبوس به هتل عظیمت نمایند وی افزود همچنین بناس به دلیل این ادامها به عنوان مجازات از دولت عربستان خواسته شود سه بار از روی اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته ده دقیقه هم یک دست و یک پای خود را بالا بگیرد تا دیگر از این کارهای بد بد انجام ندهد پایان محشروع اخبار ای وای، هم چون در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرحنگ هستیم سرنگ جان ما در خدمتیم بفتیم بله بنده هم سلام عرض می بله. کنم ما در خدمتی شنواندگانی عزیز هستم سرنگ جان بله. فرمانده نیروی انتظامی چند گفته بود که احکام حضرت آقا مبنای کار پلیس در حوزه فضای مجازی است بله. و باید به عباد و زوایه مختلفان ابو جکردی و آنرا توضیح کنیم درسته. این معنیش دقیقاً چی میشه سرنگ ببینید معنیش این است که مادر همه حالت پیروی فرمایید شما احکامی حضرت آقا هستی ما پیروی از دستوراتی شون صلی و هیکاری پلیسه ها سرنگ حالا سوال من اینه که یعنی حضرت آقا در مورد مسائل اینترنتی هم رساله احکام دارن بابخش متوجهن میشم چی چی میگن شما ما مگه ایشون برای احکام و مسائل شرعی رسالی ندارن بله بله آیا برای مسائل اینترنتی و مجازی هم رساله دارن و پلیس فتا همینجوری نشسته اینترنت رو با رساله ایشون چک میکنه یا چی کلاً نه بی بی چی نه خیر رساله ندارم ولی یه سری فرمایشاتی دارن مم. که ما اون هارو سرلا و هیکارمون قرار میده آه. مثلا اینکه چند وقت پیش گفته بودن پلیس فتا حواسش بله. به همه چیز رو میگی دیگه اون یه یعنی... بله بله بالاخره بله ایشون لطف دارن و آه. لطفی ایشون همیشه شامل حال ما خیلی. شده سرنگ خیلی واشوتیه بله اینه این پسرای افتیمت عکس اشو دخترمون منتشر کرده بود <تصفيق> <تصفيق> جو این کاری شما این صحبت تا شما زشته عجبهید خواخی... ولی جا دارد بگم مقامی ما از ذه رهبری همین شپلی تا به اشکالی مختلف موردی تفاوت قرار داده عجب بله. بله. بله. خب سرنگ حالا میخوام میگه خبر دیگر رو مطر بفرم... ببین مدیر کل امور اجتماعی وزارتتی کشور به. اعلام کرد تو ایران سالی 60 میلیون لیتر به. مشروبات الکلی مصرف میشه نه من بعید میدونم انقدر مصرف داشته باشیم ما خیلی خبای شمااع 5۵ میلیون دیگه خیرشه ببینی مسئله اینه که با این همه مبارزه که شما میکنید این میلیون ها لیتر مشروب جوری تو کشور مصرف میشه سرهنگ ببینید نینو ینتزامی حتی اکثر تلاش ها برای مبارزه با مشروب خاری انجام میده اه. ولی خب ببینید ما تنها هستیم در این جبهه خب آخ سرهنگ در جبهه حق علیه مشروبات الکلی نیروی انتظامی مسئول دیگه؟ بازمال بله بله. بازیافت جوواله که نمیتونه بیاد کمک شما در اینجا. ببینید حضرت آقا سرنگ در این مورد راهنمودی چیزی، رساله‌ای، چیزی ندادن. خب همیشه از تلاش های پلیس در این راه تقدیرات، تهنیت و عمل آوردنا واقعاً تلاش بله در اصل همین تلاش هست که مواد مخدر هر روز ارزونتر از دیروز و مشرب فراون‌تر از دیگه درست میشه دیگه بله. میگم سرنگ من یه پیشنهاد بدم از طرف لسانه به شما ها بفرمایید با همین شب پیشنهاد داتی شهر و گوش میکنید بفرمایید میگم شما بی یه سری چیزا باشی دیگه خودش درست میشه دیگه نمیفهمم آقا جون یه بار دیگه بفرمایید آقا چه نمیگی فهم... سرنگ میگم شما دست از سر این مشروب و مواد مخدر و اینا بردارین ها؟ این به جان تو و وزشت بهتر میشه آقا جو این چه چه حرفی از شما میزنی اخر آشوالله. مبارزه با این مرض چه راهت مخدرات وظیفه ذات یعنی رو انتظام اس واقعا جلوتا ورسین حرفا که شما تورو حسان مطرح میکنید باشی باشی باش الان چرا الان خودت از عزت میکنید ببین بیا بزار من نه یه گل آپ بدم بهت بهنیت خوشت باشه من این کارو همیشه شماست آقا جو همینش عمل کردی پلیس رو با سیاه نماینه کاسمیدین شما خای خوب نیست بیا با بیا بوتیا بگی گل آپ بخواد جوش نزن بابا بفرسی با با با با دیوانم نلدی آقا جون خیلی ما چن کردم میگم اینو بولی بالادی میگم مش کول بده ببینیم آقا این ما حوش شده بله باب با با تشکره توجه شما آه آه چی شد این چی بود آقا آخ سوخته ای. این چه ماری بود دادی من خوردم آقا جو آقا خبا صد بار به این دلبرم دلبر میگم این عرقال تو این بچی ها این چی ای با. آقا جو دلبرم دلبر دیگه که که آخ سوخته یه آبی چیزی بود من آقا خیفه شده چی چی چی بودی دلبرم دلبر این ساقیه جزیزمونه بوده سرهنگ چی گذاشتیم دلبرم دلبر ردگم کنی بیا با ما هم که اعمالش دادیم به تو دیگه بیچاره شدی رفت دیگه چیکار کنیم حالا خدمتی جافتتون میرس کمک کون آقا من حالم بعدش آب بده نه ببین آخ ایایای بیا این بوتی دیگه خود خود آب بده اینو بده اینو بزن اینو ول ول ول اوه ماجو یکی یک یار ماری بود اینم که بدتر از اون یکی ای اینو یکی بود با... این... این ای چی میگفت عرق آلوحال ریخت میشه خب من بهتره دیگه فرار کنم دیگه خیلی زایشه اوج آقای ماجو یکی من مرثی کنید کمک کنید چرا شما داریم میچرخه ببین چیزی الان تو به جای آب می... بهتر مجزه بزنیم من بزنیم ب... پرم این سوپری و یه چیپ سماس بگیرم الان اومده ما جایی ندی سرنگا من باست به سابی شما برسم پیمونه پیمونه ساوی این نه چیزه مرکز مرکز میاد منو جمع کنید ببرید میخونه میخونه دستیقم کوتاهی از من کنجه بیخونه ای اینقدر انقدر مکن تا من با شما باز برخورده قانونی مکنم ساقین امشب مرکز مرکز چی میگوی تو حالا بیان آمد چرای تویش مرکز وقتی عزیزی میره وقتی برا میباره از آسنون وقتی آدم رونده میشه هستونه خب اما در ادامه بحث درجات آلودگی هوا میرسیم به مرحله بسیار ناسالم که توی این مرحله یک مه دود نسبتاً غلیظ فضا رو می‌پوشونه و دیگه شما اگه ساکن تهران باشین مثلا برج میلاد از بغل پل گیشام نمی‌تونین ببینین یعنی انقدر مهدود توی فضا هست چون تو بخشای قبل برای جا مطلب برای شما مثال شیشلیکیش رو زدیم اینجا هم در مقام مقایسه میتونیم بگیم که هوای بسیار ناسالم اون شیشلیکیه که متاسفانه زیر پا افتاده و کسی هم با کفش از روش عبور کرده جدی قال من برای جلوگیری از اشم خاطر شما من نمیتونم بگم با همون کفشال قبلش کجا بود و بعد کجا داشت می اومده که اومده این رو اینو خیلی دیگه بده. حالا شما زیاد نمیخواد بهش فکر ذهنتون ذهنتونو درگیر کنید. فقط همینو بدونین که جای خوبی نبوده و اینکه این شیشلیک پا خورده درو داغون رو که همون هواه باشه هفته پیش ساکنین شهرهای مثل تهران خوردن یعنی تنفس کردند که این خودشه چیزی شبیه خلق کردن یه است اما این تای ماجرا نیست اوضاع از این هم میتونه بدتر بشه یعنی گاه وضعیت آلودگی هوا در مرحله خطرناک قرار میگیره و توی این مواقع خطر نفس کشیدن به مراتب بیشتر از نفس نکشیدنه و مشتار آلودگی مشابه وقته که مثلا به جای حمله شیمیایی شده باشه دیگه توی این حالت مثال شیشلیکی اصلا کلا کاربرد نداره از این کار از این حرفات گذشته فقط باید بچا هوایی برای همدیگه طلب آموزش کنیم توی مرحله ای که تازه قدر شیشلیکایی رو که یه زمان میخوردیم خواهیم دونست خلاص اینم درجات مختلف آلودگی هوا بود که امیدواریم با این مثال‌های شیشلیکی کامل براتون جفت داده باشه که چی به چیه و چه جوریه فریبورز غریب سلام سلام سلام هرچی جان سلام به همه عزیزان و شنوندگان محترم چه جوری بود شروع سال نو میلادی برای شما فریبورز شروعش خوب بود هرچی جان اما تا دیروز امروز صبح که بلند شدیم و زدیم و افتارتا چه شروع کنیم خبر درگذشت متاسفانه محمد علی اینانلو که گزارشگر پیشکسوت والیبالم بود ورزش از نگاه دورم ایشون شروع کردی شبکه دو سیما درستان. خبر بعد بود که امیدوارم از این خبرها کمتر داشته باش امیدواریم به چند تا های سال 2015 اشاره کردیم هفته ای پیش اما یه چیز بامزه اومده بود توی سایتی کریس رونالدو رو به عنوان بازی بازیکن سال معرفی کرده بود که همین مغور شب سال 9 اشید یه اتومبیل پرشی آخرین مدل استپید رنگ به مامانش ایدی داده به به خدا رو شوک دیگه قدیما بهش زیر پای مادران بود الان دیگه پورشه زیر پای مادر آقای رونالدو البته نه، دیگه چه خبر؟ یه خبر هم داشتیم از ورزشگاه آزادی که 44 سال شده مدیر این ورزشگاه آقای نیکو خسال با دوربین شبکی دوی سیما بود اگه اشتباه نکنم یکی از شبک های سیما در جاهای مختلف ورزشگاه مصاحبه کرده از مشکلات عدیده ورزشگاه آزادی گفته که اگه موافق باشی بخشی از حرف ایشون رو بهشنیک بشننوید. یه جاهایش نشست کرده. این نشستشونم قابل <سؤال> توجهه بتون حرکت کرده اینجا تو ورزشگاه آزادی این راه فرار به داخل <سؤال> پیش بینی نشده. شراد مناسب نیست اصلا حدود 12000 هزار سوراخ تو این سقف تقریبا و استخرمون که روبروی اون پیش بینی میکنن حدود 20000 هزار تا داشته باشه. بله منظورشون هزار یعنی تا سوراخ بود روی سقف سالن بله سقف سالن جالب سقف‌ها رو نشون میداد چه گذاشته بودن تو سالن چیک چیک آب میومد روشون تو خود محل میکست زون ورزشگاه محله که مصاحبه میشن ورزشکارا با خبرنگارام سوراخ بود چیکه میکرد کامنت با مزه گذشته فارسی از خواننده های سایت ورزش به نام علیرضا رئالی 100 آتیشه شون نوشته، یه زمانی ما ورزشگاه آزادی رو داشتیم تو قطر یه دونه توپ هم نبود و حالا قطر شده میدبان جامعه جهانی و ما پول نداریم ورزشگاه آزادی رو بازسازی کنیم بله در عوض همه ملت های مستضف جهان خب چشمشون به ماست دیگه حالا اینکه چشمشون به کجای ماست دیگه بماند ممنونم ازت فریبورز عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگه <تصفيق> این سوراخو دوستم که گفتم انگار چسبیده به صندلی ماشین به دنیا اومده و نزدیکترین مسیرم که بخواد بره با ماشین میره همین ایشون چند روز پیش که ناسالم ترین هوا بر تمامی رده های سنی اعلام شده بود پیاده رفته بود سر کار بهشم که گفتم آخه این چه کاریه فکر سلامتیتو نکردی گفت اتفاقا فکر میکردم پیاده روی برای سلامتی خوبه دیگه ماشینم نبرم بیرون هوا کمتر آلوده میشه بر سلامتی دیگران خوبه هم ببین اگه شانس آوردیم و میون این همه کمپین رو انداختن و کمپینی هم برای یک روز بدون ماشین بیرون رفتن را افتاد تو یکی حواست باشه که اتوبوس و متروام هست لازم نیست در هوای آلوده پیاده روی کنی مونواکسید و ذرات ریز معلق در هوا نوش جان کنی. فورا نگه فورا نگه روزنامه روزنامه روز روزنامه روز روزنامه پیش روزنامه یافتابی از به نقل از احمد خاتمی امام جمعه تهران امروز تیتر زده بود که حامیان فتنه رد صلاحیت هم نشوند رأی نمیآورند حالا تازه به فرض محال رد سلاییت هم نشن رأی هم بیارن چیه که رأیشونو بشموره؟ بله اینجوری نظام علکی نیست که روزنامه ابرار امروز تیتر زده بود که آبیاری مخفیانه برخی مزاره با فازلاب بله حالا کلم و کاهو و ریحون و جفری به جای آب با فازلاب آبیاری بچن چی میشه مگه؟ بالا ملت مونوکسید کربون رو جای اکسیژن استنشاق میکنه ککشون هم نمیگذه. روزنامه حمایت با اشاره به دستور روحانی برای افضایش توان موشکی ایران تیتر زده بود که سیلی موشکی ایران به سیاست های آمریکا. بله حالا این از اینور سیلی موشکی میزنه اونم از اون ور میخواد اردنگی ضد موشکی بزنه و یه چیز دیگه خبرشون مثلا توافق کردن که سایه جنگ دور بشه چی بگیم بابا امشب هم تموم شدیم برنامه اول از هفته سیوم رادیو پس فردا به پایان رسید شاعر گفته لبخند که میزنی زانوان زمستان میلرزد بهار میشود و هزار چشمه زلال میجوشند از چشمهات لبخند که میزنی هنوز در امتداد این انتظار خاکستری زیرا آسمان تیره این شهر پنجری هست که در پس آن بشود زندگی را چون هوای پاک تنفس کرد و دل را به نوازش انگشتان بلند آفتاب سپرد شب همیگیتون خوش و لبهاتون پر از لبخند تا فردا انگاری جاری میری تنها بشی سرد بشی این خونه و همه که این خواستتو نه خواستتو انگاری دیگر از هم خسته شدیم دیگر نمی‌تونیم به هم بگو که ما دو تا با بگو به همه بگو دیگه بر نمیگرده دگو به همه دگو، اون تو روح میگه با من زندگی کرده دگو که دیگه استاد دلش نمیخنده بگو به هیچ کی مسکن تو دیگه دل نمیبنده نمیبنده.